فرودگاه مهراباد قدیمی ترین فرودگاه ایران است؟ فرودگاه مهراباد در سال 1938 میلادی 1370 شمسی افتتاح شد اما از سالها قبل از آن هم هواپیماها در ایران پرواز می کردند این هواپیماها ها کجا می نشستند؟ ها در زمین همواری در اطراف تهران فرود می‌آمدند. اولین پرواز ایرانیان کی انجام شد؟ در سال 1923 گروهی از جوانان ایرانی برای آموزش خلبانی به روسیه و فرانسه رفتند و دو سال بعد به ایران بازگشتند. از آن پس پرواز خلبانان ایرانی آغاز شد. آیا در خصوص ساخت هواپیما و قطعات آن ای در ایران وجود دارد؟ بله این صنعت در ایران نسبتا قدیمی است و سال 1935 وجود داشته است. جالب است که شهر تهران دو فرودگاه بین المللی دارد فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی بله فرودگاه بین‌المللی امام خمینی چند سال پیش افتتاح شد و فرودگاه جدیدی است فرودگاه امام خمینی کجاست این فرودگاه در چهل کیلومتری جنوب تهران واقع شده است و اکثر پروازهای خارجی از آنجا صورت میگیرد